افثانه های مردم هندوستان نوشته راما چاندرا کی مورتی ترجمه سارا شمس ارائه شده در کانال تلگرامی هزار افسان، داستان های افثانهی صوتی به مدیریت آقای محمد جواد بوستانی خانش توسط بنفشه این داستان ادای دین شیواجی به وسیله امپراتوری اورنگزیب در شهر آگرا زندانی شده بود او تصمیم به فرار گرفت و وانمود کرد که بیمار شده مشاوران از امپراتور درخواست کردند که برای بهبودیش یه مراسمی به اسم پوجا انجام بشه پوجا یه مراسم مذهبی هندو هست درخواستشون مورد قبول قرار گرفت از طرفی هر روز سبدای شیرینی و میوه برای توضیح بین برحمن از زندان به خارج فرستاده میشد. نگهبان چند روزی همه یه ثبت رو بررسی کردند. بعد کار بازرسی سرسری گرفته شد و آخرشم متوقف شد سرانجام زمانی رسید که شیواجی احساس کرد میتونه راحتی از زندان فرار کنه پس توی یکی از ثبت قایم شد و سبد رفت بیرون از زندان و هیچگی هم بهش شک نکرد او خودشو به شکل یه سانی آسی در سانی آسی راهب هندو هست شیواجی به همراه پسرش سامباجی و نزدیکترین متحدان و دوستانش یشاساجی و تاناجی که اونا هم خودشونو به همون شکل درآورده آورده بودن فرار کرد گروه اونا از یه جا به جای دیگه در سفر بود روزا استراحت میکردن و شباب سفر خودشون ادامه میدادن اونا بیشتر از بین جنگل‌های انبوه رد می‌شدند چون خبر فرارشون به همه ایالت ها داده شده بود و نمیتونستن از مسیر جاده‌های اصلی عبور کنند چون در سرتاسر سر مسیر موانع ایست بازرسی دولتی درست کرده بودند یه روز موقع عبور از جنگل شیری بهشون حمله کرد شیواجی خنجرش رو از غلاف بیرون کشید و خودش رو انداخ روی شیر بقیه هم بهش کمک کردند. سرانجام شیر کشته شد و گروه به آسودگی نفس راحتی کشید اما تاناجی متوجه شد که شیواجی بد جور زخمی شده پس به سرعت یه مقدار از گیاهان جنگلی رو چید و به شکل باند در آورد و روی زخمش بست به این ترتیب گروه دوباره به سفر خودش ادامه داد دو روز بعد اونا رسیدن به مرشد آباد. طب شیواجی بیشتر شده بود چون زخمش عفونت کرده بود و احتیاج به استراحت و مراقبت داشت او به تاناجی و یشیساجی گفت شما به راهتون ادامه بدین و پسر منو با خودتون ببرین منم وقتی خوب شدم بهتون ملحق میشم دوستانش اعتراض کردن و حاضر نشدن قبول کنن اما شیواجی با صحبتها و درخواستاشون موافقت نکرد تاناجی گفت کجا میخوای بمونی؟ هیچ جا برای تو امن نیست جاسوسان اورنگزی به مغل همه جا هستند و اگه تو رو شناسایی کنن زندگی تو از دست میدی. شیواجی جواب داد نگران نباشید کسی منو با این شکل و شمایل نمیشناسه اونا فکر میکنن من یه ثانی آسیه بیمار هستم یه برحمن فقیر و محترم به اسم وینایا کدیو توی این شهر زندگی میکنه که من ازش تقاضا میکنم منو تو خونش بپذیره بعید میدونم تقاضای منو رد کنه دوستانش گفتن خیلی خوب هرچی شما بگی گروه آزم وینایا کدیو شد تاناجی به برحمن گفت این سانی آسی بیماره و احتیاج به استراحت داره ما نمیتونیم اینجا بمونیم مجبوریم هرچه سریتر سریعتر به وطن خودمون برگردیم جایی رو هم برای نگهداری ازش بلد نیستیم و نمیدونیم چه کسی میتونه ازش مراقبت کنه وینایاکدیو جواب داد اگه بخواد میتونه مهمون من باشه شیواجی گفت شاید باعث دردسر شما بشم برهمن در حالی که دست به سینه ایستاده بود گفت این حرف رو نزنید من فقیرم اما هرگز از کمکی که بتونم به نیازمندا مندابه کنم کوتاهی نمی کنم شما باید مهمون من بشید شیواجی سرش رو به علامت موافقت تکون داد تاناجی و یشاساجی اونجا رو ترک کردن و وقتی به مرز مرشد آباد رسیدن تاناجی به همراه خودش گفت تو با سامباجی به سفرتون ادامه بدین فکر نمی کنم تنها گذاشتن شیواجی کار درستی باشه خطر همه جا در کمی من بر میگردم و از دور مراقب میشم تا اگه کمکی لازم داشت بتونم فوری کنارش باشم یه شاسه موافقت کرد شیواجی بیمار و ضعیف تو خونه برحمن موند برحمن صبحا به خلوتگاهی اطراف خونش میرفت تا با خدا نیایش کنه مردم بهش صدقه میدادن و اون میتونهس با اون یه مقدار غذا برای خودش و همسرش و دختر جوانشو شیواجی تهیه کنه. به زودی شیواجی سلامتیش رو پیدا کرد. او هر روز تمرین و ورزش میکرد و صبحها برای راهپیمایی طولانی از خونه خارج میشد. یه روز احساس کرد که وقتش رسیده که حرکت بعدی خودش رو آغاز کنه. ولی قبل از ترک خونه برهمن دلش میخواست محبتاشو جبران کنه اگه به خونه برمیگشت میتونست مقدار زیادی پول براش بفرسته اما با این کار جون برحمنم به خطر میافتاد. چون مامورای دولتی متوجه وجود این ثروت ناگهانی میشدن و با پیگیری و تحقیق میفهمیدن منبع ثروت چیه بعد برحمن به درد سر میفتاد. از طرفی، شیواجی زیاد هم به آینده خودش خوشبین نبود و نمیدونست که به تنهایی میتونه از قلم روی به سلامت خارج بشه یا نه. اونم در حالی که هیچ هیچی یا یاوری نداشت. پس چطور میتونست به برحمن کمک کنه؟ وقتی تو بازار قدم میزد، شنید دو معمور دولتی با هم صحبت میکردن. یکی از اون دو نفر گفتش، دوی حکومت حاضر شده به کسی که شیواجی رو دستگیر کنه دو هزارسه که طلا پاداش بده. این حرف باعث شد یه فکر ناگهانی به ذهن شیواژی جرقه بزنه. با سرعت به خونه یه برحمن برگشت و یه نام ای نوشت. این نامه اینجوری بود. این بررحمن میهمانی دارد که به تصور می کند یک سانانی آسیست. در حالی که میهمانش شیواجی است که تغییر قیافه داده است شما میتوانید بیایید و او را دستگیر کنید اگر آن دو هزار سکه طلا را به برحمند بدهید او راحتی همراه شما خواهد آمد شیواجی در پاکت رو مهر کرد و نشانی رئیس نگهبانا رو, رو روی پاکت نوشت و اونو به برحمند داد و گفت میشه خواهش کنم این نامه رو به نشونی که نوشتم برسونی؟ براهمن که هیچ نمیدونست توی نامه چی نوشته شده قبول کرد و نامه رو برد به فرمانداری وقتی مقابل فرماندار ایستاد و نامه رو تقدیم کرد فرماندار پرسید کی تو رو به اینجا فرستاده براهمن گفت یه سانی آسی که مهمان منه وقتی فرموندار نامه رو خوند چشماش به طرز عجیبی برق زد بعد لبخندی زد و گفت خدا خواسته بخت در خونهی منو بزنه هرچی زودتر منو به خونت ببر به رحمان که نمیدونست چه اتفاقی افتاده به سرعت دنبال فرمانده برو افتاد فرمانده به تاخت با اسب میرفت و چندتا سرباز همراهیش میکردند شیواجی که کنار رودخانه ایستاده بود به گروه سواران سلام کرد لبای فرمانده به خنده باز شد پس اینطور شیواجی تو نتونستی خیلی دور بشی؟ شیواجی دستش رو به طرف خنجر خودش برد و گفت من تو رو به پناهگاه خودم راهنمایی کردم اون دو هزار سکه طلا رو به برهمن بده تا همراهت بیام در غیر این صورت نمیتونی منو زنده دستگیر کنی فرماندار گفت خیلی خب دست نگهدار بیا اینم دو هزار سکه طلا و کیسه رو داد به برحمن اشک از چشمای برهمن سرازیر شد گفت من نمیتونم مهمان خودم رو تسلیم شما کنم آخه چطور تونستم او رو لو بدم؟ شیواجی گفت: «نه، تو منو لو ندادی؟ این تنها راهی بود که میتونستم محبتات رو جبران کنم. به رحمن غمگین به شیواجی نگاه کرد که همراه سربازها از اونجا دور میشد. شیواجی و گروه محافظانش به سمت زندان شهر حرکت کردند. وقتی سربازا به چهار راه رسیدند ناگهان چند مرد مسلح از کمینگاه خارج شدند سربازا فرصت هیچ دفاعی پیدا نکردند عده کشته شدند بقیه هم فرار کردند حتی فرماندار با اسب خودش از معرکه فرار کرد و ناپدید شد سیواجی به مردای مسلح نگاه کرد و تاناجی رو شناخت شگفت زده شد و گفت تو اینجا چه کار کنی؟ تاناجی جواب داد من یه شاساجی و سامباجی رو فرستادم و خودم برگشتم تا از دور مراقب شما باشم. میدونستم به کمک نیاز پیدا میکنی. وقتی فهمیدم به رحمن پیش فرموندار میره، حد زدم باید خبری باشه. پس با عجله گروه خودم رو برای نجاتت خبر کردم و در کمین موندم. میدونستم که اونا از این مسیر به زندان میرن. حالا هم تا دیر نشده باید فرار کنیم. سرانجام شیواجی و تاناجی بعد از گذشتن از خطرات بسیار خودشون رساندن به سرزمین ماراتا و به سلامت گذشتند امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید امیدوارم از شنیدن این داستان لذت برده باشید. کانال تلگرامی هزار افسان داستانهای افثانه ای صوتی نشانی کانال تلگرامی تی می مهران دوستی M-E-H-R-A-N-D-O-U-S-T-I نشانی وبلاگ ما M-E-H-R-A-N-D-O-U-S-T-I نقطه -E B-L-O-G-F-A نقطه -E C-O-M مهران دوستی dotblockfall.com کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی